آدم هایی که تو مهمانسرای دو دنیا گیر افتادن نه اونقدر زندن که زندگی کنن نه اونقدر مردن که کاری به کار زنده ها نداشته باشن. اونا فقط منتظرن که نوبتشون بشه. سلام، شما قسمت یازدهم پادکست علف رو میشنوید پادکست علف، پادکستیه که در هر قسمتش من و دوستانم یک نمایشنامه رو برای شما روایت میکنیم در این قسمت، سراغ نمایشنامه مهمانسرای دو دنیا از سر اریک امانویل اشمیت رفتیم نمایشنامه مشهور مهمان سرای دو دنیا اثر سر امانوان اشمیت فرانسوی بلژیکیه که در اطراف شهر لیون فرانسه در خانواده کاملا غیر مذهبی در سال 1960 متولد شد و الان دقیقا 60 سالشه یک بار در همون سنین کودکی وقتی همراه مادرش به تماشای یک اجرا از آثار ایتمن رستان رفته بودن خیلی علاقمند شد به نوشتن و کارش رو از همون موقع شروع کرد از تحصیلاتش و آثارش بخوام براتون بگم دکترای فلسفهش رو در سال 1987 گرفت و توی کارنامه کاریش هم رمان داره، داستان کوتاه داره، یک کتاب آتو داره و یه عالم نمایشنامه که یک از مطرح هاش همین نمایشنامه مهمانسرای دو دنیا بود و مثلا شاید اسم خرد جنایت های زناشویی رو هم از بین آثار مطرحش شنیده باشید خیلی جالبه که ما در قسمت قبلی نمایشنامه مرک در می‌زننده بود یالن رو کار کردیم که اون هم موضوعش مرگ بود و البته بودیالن با زبان شیرین و کمدی خودش بهش پرداخته بود در این نمایشنامه اما خیلی جدیتر به موضوع مرگ و زندگی پرداخته میشه و شخصیت‌هایی که در این نمایشنامه هستن یک گزاری رو طی می‌کنن که حالا به جزون اتفاقی که براشون افتاده و جایی که توش افتادن یک آگاهی و شناختی به دست میارن که باعث میشه همشون حالا کم و بیش تغییر کنن و خب همین تغییر و چالش کاراکترهای مختلف این نمایشنامه مخاطبش رو کاملا به فکر فرو میبره و اینجا هنر و قدرت قلم اشمیت خودش رو نشون میده من خودم هرچند با خیلی از تفکراتی که نمایشنامه مطرح میکنه موافق نیستم اما فکر میکنم شنیدن یا خوندنش برای آدمهای دیگه و حتی خود من خالی از لطف نبوده و نیست خلاصه متن این اپیزود رو مریم رحیمی عضو جدید تیم الف انجام داده و منبع فارسی ما ترجمه خانم شحلا هائری از انتشارات قطر است ترجمه خیلی روان نیست ولی فکر می کنم تنها ترجمه فارسی نمایشنامه باشه و در زمد خانم هائری خیلی از کارهای اشمید رو به فارسی ترجمه کردن و تجربه و نزدیکی خوبی با کارهای اشمیت دارن به هر حال اگر شما بخوید نمایشنامه رو بخونید، باید سراغ همین ترجمه برید که من لینک خریدش رو در توضیحات اپیزود قرار میدم. همچنین توی توضیحات لینک شبکه‌های اجتماعی پادکست قرار داره که خیلی ما خوشحال میشیم اگر اونجا ما رو دنبال کنید و نظر بنویسید برامون و باعث بشید کارمون بهتر بشه. اگر هم دوست دارید از پادکست حمایت مالی بکنید، لینک هامی باش و پیپینگ پادکست رو در توضیحات این اپیزود میتونید پیدا کنید. اما بهترین حمایت شما معرفی پادکست به دوستانتونه بریم سراغ مهمان سرای دو دنیا اثر اریک امانوئل اشمید. نمایش با صدای عجیبی شروع میشه که شبیه به یک باد خیلی سهمگینه و این باد میتونه هر چیزی رو که سر راهشه با خودش بکشه و ببره هی این صدا شدیدتر و غیر قابل تحملتر میشه و یهو یه از بین میره آخرین لحظاتی که صدای این باد شدید به گوش میرسه صدای آسانسوری رو میشنویم که در حال متوقف شدن صحنه روشن میشه و سالن پذیرش یک مهمانسرا رو میبینیم زیر یک نور ملایم و مصنوعی سالن راحت و بیتجملی دیده میشه که توش مبلها دور میزهای کوتاهی چیده شدن و پیشخانی هست که فعلا کسی پشتش دیده نمیشه مشتری های این مهمانسرا به دوتا راه رو راه میشن. میشند که به اتاق ها میشه می و این دوتا راه رو با دو حرف الف و ت مشخص شدن که بعدن میفهمیم معنی اونا چیه از داخل اون آسانسوری که متوقف شده بود جولیان مرد جوانی که یک بارونی رنگ روشن به تن داره گیج و منگ مثل اینکه ضربه‌ای بهش وارد شده باشه دیده میشه جولیان با یه دست سرشو می‌خارونه و با یک دست دیگه به های آسانسور تکیه داده پیشونیش رو میماله و نیروش رو جمع میکنه تا از آسانسور خارج بشه قدمهاش مردده که انگار توی تصادف رو از دست داده باشه بعد یه لحظه به دوروبرش نگاه میکنه و به طرف پیشخانه پذیرش میره بلافاصله، کارمند سفید ظاهر میشه و بهش لبخند میزنه. جولین به پیشخان تکیه میده و میگه من کجا هستم؟ به جای جواب، مرد آروم کلیدی به طرفش دراز میکنه که جولین اون رو میگیره و میگه حق با شماست، بهتر برم استراحت کنم. با اشاره مرد پشت پیشخان، زن سفید پوشی بی صدا ظاهر میشه و به طرف جولین میره انگار بی صدا چیزی گفته چون جولیان جواب میده بله چمدون دارم ولی تو ماشینمه در حالی که تو جیبش دنبال می میگرده ناامیدانه میگه که حالا مهم نیست بعدا ترتیبش رو میدیم یکی از اونها بازوش رو میگیره و اونو به طرف راهروی روی میبره که یه هو جولین میسته و میگه لابود باید اسممون بدونین واسه اینکه اگه کسی کارم داشت مرد جوان دفتر مهمون سرار رو نشونش میده جولیان میگه اه اسمم رو وارد کردین؟ خب آره حق و شماست میرم استراحت کنم از راهروی ت ته دو نفر ظاهر میشن که یکی از اونها راجاپور قیباموزه و یکیشون رئیس قیباموز میگه نگفتم یه تازه وارد داریم رئیس که کنار قیباموزه مردیه با چهره جدی، مقرراتی و مثل آدمایی که خیلی برای خودشون احترام قائلن با دقت و وسواس ولی خیلی ساده لباس پوشیده. رئیس میگه نه بابا من که چیزی نشنیدم. قیباموز میگه معلومه از بس که گوشتون سنگینه. رئیس که بهش برخورده میگه ببخشید. قیباموز میگه حالا معلوم میشه. و به طرف کارمند پذیرش میره و ازش میپرسه رافائل کسی اومده مگه نه؟ مرد لبخند میزنه. قیباموز میگه بله پس درست به نظرم رسیده بود. رئیس متعجب میگه شما رافائل صداش میکنید؟ من بهش میگم گابریل. قیباموز میگه اونم جوابتونو میده؟ رئیس میگه معلومه. قیباموز میگه پس هر دومون حق داریم. رئیس میگه معلومه که نه. به سمت پذیرش میره و میگه گابریل اسم شما رافائل یا گابریل. مرد بدون اینکه که کلمه ای به زبون بیاره ناپدید میشه. قیباموز میگه چرا نمیتونی تحمل کنی که هر دومون حق داشته باشیم؟ رئیس میگه برای اینکه من یه چیزی میگم و شما یه چیز دیگه. حقیقت یا اینه یا اون نمیتونه هر دوش باشه. قیباموز روزنامهش رو باز میکنه و شروع به خوندن میکنه. رئیس همچنان به حرف زدن ادامه میده و از اینکه دکتر سین جوابش رو نمیده و باهاش درست رفتار نکرده کلی گله میکنه. بعد از حرفای رئیس ماری وارد میشه میگه چهار دفعه تختم رو جمع کردم پنج دفعه دستشویی رو سابیدم والا دیگه نمیدونم چه بلایی سر خودم بیارم شما خردکاری ندارین لباستون خیاطی لازم نداره رئیس که سعی میکنه مکالمه رو عادی کنه میگه خانم دکترسین شما رو پذیرفته ماری میگه نه با اینکه خواسته بودم رئیس میگه باور نکردنیه یه جوری رفتار میکنن انگار کلفتین. قیباموز میگه آقای رئیس اینجا کسی باهاش رفتار ای نشده اینجا لازمه بگم که اگر نمیدونین قیباموز چیه به آدمایی میگن که هزار روح میکنن و کارهای شبیه این رئیس میگه لابد منظورتون برابری انسان هاست این مرض جمهوری مثل جزام همه جا رو گرفته دیگه اصلا معلوم نیست کی به کیه ارزش آدم ها دیگه اصلا اهمیتی نداره قیب آموز میگه به نظر من اون چیزی که ارزش آدم ها رو میسازه آدم بودنشه نه چیزه دیگه ماری به قیب آموز میگه رئیس راست میگه آدم که نمیتونه یه کلفتو با یه رئیس مقایسه کنه رئیس میگه بله می حتی اونم ب و از ماری میپرسه به نظرت فرقشون چیه؟ لطفا با صدایی بلند جواب بدید تا دکتر سین یاد بگیرد. ماری میگه از نظر من فرق اولشون دفتر کاره. یه رئیس دفترش رو کثیف میکنه در حالی که یه کلفت تمیزش میکنه. طرز صحبتشون هم فرق میکنه. یه رئیس با همه طوری حرف میزنه انگار مردم آشغالن. در حالی که یه کلفت وقتی حرف میزنه انگار خودش آشقاله بعدش هم یه رئیس کلی عنوان جلو عقب اسمش یادک میکشه جناب و آقای فلان و رئیس شرکت بهمان ولی یه کلفه فقط اسمشو داره تازه اونم خیلی زود از دست میده و فقط اسم کوچیکش میمونه و بس تازه بهتر اسمش از قبل ماری باشه چون از اونجا که رئیس ها حافظه درست و حسابی ندارن دیر یا زود اسمش ماری میشه همین لحظه جولیان وارد میشه و به نظر می میرسه حالش بهتره میگه سلام و همه جلوی پاش بلند میشن و میگه من ژولین پورتال هستم قیباموز میگه اجازه میخوام آقای رئیس دلبک و خانم ماری مارتین رو حضورتون معرفی کنم ماری دوباره خودش رو با تأکید روی اسم کوچیکش معرفی میکنه و قیباموز هم میگه من راجاپور قیباموزم ژولین میگه ببخشید لابود به نظرتون احمق میام ولی نمیدونم من اینجا یادم نمیاد توی مهمون سر اتاق گرفته باشم. با این حال وقتی رسیدم اسمم تو دفترشون ثبت شده بود. مسئولش کجاست؟ ما دقیقا کجاییم؟ قیباموز میگه منظورتون از دقیقا چیه ؟ جولیان میگه کدوم شهریم؟ کدوم جاده ایین. غباموز میگه من خودم هم نمیدونم. جولین میگه چطور؟ شما هم تازه واردین؟ قیباموز میگه نه نه من قدیمی ترین مهمون اینجام شش ماهه که اینجام. ماری میگه شما با ماشین تصادف کردین. جولیان میگه آره نه نمیدونم توی بزرگراه بودم آره شب بود درسته با قضان کلی مشروب خورده بودم اما کاملا به ماشینم مسلط بودم تون میروندم ولی حواسم به رانندگیم بود داشتم برمیگشتم خونه ماری میگه کسی منتظرتون بود جولیان با سر پایین میگه نه ماری میگه باید همیشه کسی منتظر آدم باش تنها راه تصادف نکردن اینه جولیان عصبی میگه ولی من تصادف نکردم همه سکوت میکنن جولیان دوباره میشینه جولیان میگه وقتی وارد این مسافرخونه شدم متوجه شدم که دارم چرت میزنم ماری و قیباموز میزنن زیر خنده قیباموز میگه مسافرخونه خونه چه بامزه جولیان میگه میشه کمکم کنین قیباموز میگه راستشو بخواین من در این مورد تجربه دارم فقط از یه راه میتونین بفهمین کجایین و اونم اینه که از تک تک ما بپرسین قبل از اومدن به اینجا چی کار میکردیم ماری و رئیس سرشون رو به نشونه تایید تکون میدن ماری میگه راست میگه از من بپرسین جولیان اینجا واکنشی نشون نمیده دوباره میگه ای بابا بپرسین دیگه جولیان کلافه شکلک در میاره که ماری حمله بر پاسخ مثبت میکنه ماری شروع به گفتنه داستانش میکنه ماری آره پدر مادرم اسمامو گذاشتم ماری این اسمو به هم چسبوندن چون میدونستن جارو و خاکانداز و کهنه زمینشوری رو روی پیشونیم نوشتن بابام کارگر کشاورزی بود مرد خوشقیافهی بود حسابی پشمالو از اونا که هر روز صبح صورتشونو دوتیقه میکنن و ظهر از بس که مودر میارن صورتشون آبی میشه معنیشو که میدونین چیه تمام این موها که در میاد نشانه مردانگیه. نشون میده که توی شکمش پر از اسپرمه که باید تونتون خالیش کنه. ننم هم که هر بهار یه برادر کوچولو یا یه خواهر کوچولو پس مینداخت. دوازده تا بچه بعد از من به دنیا اومدن. پس باید کلی کمکش میکردم چون همیشه یکم هم خسته بود. خوشبختانه سیزدهمی یعنی پاسکالیتو غیرعادی به دنیا اومد. صورتش مثل گل آفتاب گردون پخ بود. واسه همه کارم از هم سن و سالاش عقبتر بود. پس بابا و مامان به همه گفتن واسه این پاسکالی تا اینجوری شده بود که از عرابه در زمین خورده بود. از اون به بعد هم بابام جلوگیری کرد. غلط نکنم مامان از بس که زایده بود دم و دستگاهش داغون شده بود. رئیس شاکی میشه و میگه کوتاهش کنید. مختصرش کنید. ماری میگه من که بلد نیستم مختصر کنم واسه همینم وقتی شروع میکنم دیگه هیچکی جلودارم نیست خلاصه ای مطلب اینه که از صبح خروجخون تا بوق سگ و آخرین بچه آخریه دائم جون میکندم و حتی یک دقیقه هم فرصت نداشتم واسه خودم تو خواب و خیال و رویا فرو برم این شد که تو 18 سالگی با اولین یارویی که تو مهمونی رقص دستی بهم به کشید و سوار ماشین قرازش کرد بستم و باهاش زندگی کردم واسه این انتخابش کردم که شبیه بابام بود پرموییشو میگم قفل از اینکه بابا کار میکرد نون خانوادهشو در میآورد و اونی که به طور من خورده بود از اون مردای بی اورزه به درد نخور بود فقط مرده ها میتونن اینقدر تنبل باشن خب دوباره روز از نو روزی از نه. باید تو خونه این مردم کار میکردم تا شکم اون دوتا دخترمون رو سیر کنم چون فقط دختر میزا فقط به درد این کار میخورم در ازاش نه حتی دستت درد نکنه خشک و خالی، نه ناز و نوازشی، نه کسی دستی به سر و صورتت بکشه، هیچی. حتی ارزه این کارم نداشت. هرچی باشه یکم خاک تو سری ضرر نداره. باعث میشه آدم احساس کنه هنوز زنه. رئیس میگه گفتم مختصرش کنید. ماری میگه منم بهتون گفتم که بلد نیستم. تو زندگی من که چیز تعریف کردنی وجود نداره. پس باید همهشو بگم یه عمر به خودم گفته بودم تو آخرین روز کارم به آخرین صاحب کارم میگم بره گمشه ولی وقتی موقعش رسید و داشتم آب و جارو و خاک اندازم و جمع و جور میکردم احساس سنگینی کردم شروع کردم به لرزیدن و یهو بیدلیل وسط سالن دراز به دراز په شدم وسط فرش تو بیمارستان الحق که خیلی مهربون بودن همه چی از سفیدی برق میزد غذای مرتب و آماده جوونای خوش رو. قلت نکنم بهترین ایام زندگی من چند وقتی بود که تو بیمارستان گذروندم. هم گفتم قلبم خسته و فرسوده است که واسه سن و سالم غیر عادیه. منو به یه آسایشگاه و خودم گفتم دیگه میتونم سر فرصت به چیزایی فکر کنم که هیچ وقت وقتش رو نداشتم. مثل مرگ، زندگی، خدا، خلاصه چه میدونم همه این چیزا. احساس میکردم که قفسه سینه‌ام فراخ شده و یه زندگی جدید داره برام شروع میشه. به خودم گفتم زندگی یعنی این که شطرق. دوباره یه سکته دیگه کردم و اومدم اینجا خدمت شما. جولیان میگه پس اینجا مرکز پزشکیه، مهمان نیست نیست. آموز میگه سب کنید. نوبت شماست آقای رئیس. رئیس میگه مختصر میکنم. آخرین خاطره که قبل از اومدن به اینجا دارم مربوط میشه به پریروز. مثل هر روز رس ساعت 8 از خونه اومدم بیرون. در درو باز کردم و دیدم یه دوچرخه سوار داره تو پیاده رو رد میشه. مسلماً کم سن سال بود. زنگ مسخره دوچرخش رو به صدا در پیش خودم فکر کردم این احمق کوچولو وای میسه. حق نداره تو پیاده رو دوچرخه سواری کنه. دو قدم برداشته بودم که یهو یه از زمین بلند شدم و پرت شدم روی نیمکت. احساس کردم که مغزم خورد گوشه یه سنگ. همین. ژولین به قیباموز میگه داستان شما چیه؟ قیباموز میگه اقمای دیابتی و مرز قد. ژولین میگه پس دکترها کجان؟ پرستارا چی شدن؟ چرا اتاقامون نجه به مراقبت ویژه نیست؟ قیباموز میگه واسه اینکه که تو بیمارستان نیستیم یکم فکر کنید ماری میگه شما تو کدوم راه رو هستین؟ الف یا ته؟ جولیان میگه این یکی قیباموز میگه راه روی الف؟ پس تصادف نکردین جولیان میگه خب معلومه من که بهتون گفتم تصادف نکردم یکم فکر میکنه و میگه راه روی الف منیش چیه؟ برای چیه که الف و یکی ته قیباموز میگه به زودی دکتر سینو میبینید. جولیان میگه پس میگین تو بیمارستان نیستم با این حال توش یه دکتر است میخوام همین الان ببینمش. رئیس میگه عزیز من آدم که دکتر سینو به این راحتی ها نمیتونه ببینه. قیباموز میگه کافی اراده کنین که ببینینش تا دیگه نتونین. ماری میگه شما مطمئنین که عمدن نزدین به چنار؟ جولیان میگه کدوم چنار؟ از چی قیباموز میگه واقعا ما این چیزایی که براتون تعریف کردیم هنوز متوجه نشدین اقما، سکته قلبی، تصادف بین راه ارتباط بین آخرین خاطرات ما رو نمیبینیم جولیان بلند میشه و به دروبرش نگاه میکنه میگه یعنی میخوایم بگیم که همه با سر تعیید میکنه. قیباموز میگه آخرین خاطرات ما متاسفانه آخرین خاطرات ماست جولیان میگه پس ما پس ما مردیم؟ هر ستاشو میزن از زیر خنده جولین با فریاد میگه که من مردم من مردم اون سه نفر همچنان میخندن جولین شونه های قیباموز رو تکون میده و میگه تو رو خدا جواب بدین من مردم شما میخندین قیباموز میگه یادتون نره اگه شما مردین معنیش اینه که ما هم مردین و این حرف باز باعث قهقهه بی اختیار هر سه نفر میشه جولیان میگه اینجا دیوون خونه هست من یه لحظم اینجا نمیمونم و بعد خشمگین خارج میشه ماری میگه طبیعی باور نکنه اون که رفتنش رو ندیده قیباموز میگه اولین شبی که اومدم اینجا حتی سعی کردم زمین اتاقم رو بکنم جولیان نفس نفس زنان و خی سرق به سالن پذیرش برمیگرده. میگه باور نکردنیه هیچ راه خروجی نیست این پنجره های ماتم که باز نمیشن اگه فورا راه خروج و نشونم ندین شیشه ها رو میشکنم و خودم رو پرت میکنم پایین ماری میگه بهتون که گفته بودم خرابی به بار میاد جولیان در راهروی الف ناپدید میشه و به اتاقش میره صدای پرتاب شدن میز و صندلی به طرف پنجره ها میاد ماری میگه هیچ خوش ندارم چیزی رو بشکنن حالا بد میشه اشیای بیچاره که گناهی ندارن جولیان خسته و پریشان برمیگرده و داد و بیداد میکنه که یعنی چی شیشه ها نمیشکنن نکنه تو زندونیم. قیباموز میگه به میل خودتون اینجا نیومدین به میل خودتونم بیرون نمیرین جولیان ملتهب میگه با این حال من زنده کاملا زنده قیباموز میگه شما قبلا هم موقعیت های عجیب تر از این دیدین تو خواب و رویا هم زنده هستین جسم دارین مثلا توی آب آبی رنگ دارین شنا میکنین در حالی که لخت تو تخت خوابتون خوابیدین. جولیان تنش رو لمس می‌کنه و میگه من زنده غیباموز میگه برای اینکه به خودتون ثابت کنین زنده این، باید خودتون رو بکشین. اگه موفق شین معلوم میشه که قبلا واقعا زنده بودین. برعکس اگه موفق نشین بازم میتونه دو معنی داشته باشه یا اینکه قبلا مردین یا اینکه جاودانه و نامیرا هستین. یه مرد و یک زن سفیدپوش وارد سالم میشن انگار که شخص مهمی قراره بیاد قیباموز میگه آها انگار دکتر سین داره میاد رئیس بلند میشه و میگه من وقت گرفته بودم زن و مرد جوان امیقن به قیباموز ماری و رئیس نگاه میکنن و بعد هر سه شون از اتاق خارج میشن زن و مرد جوان هم دنبالشون میرن پس جولین تنها در صحنه منتظر میمونه زنی وارد میشه. خوش قیافه است ولی جدیه. پرونده‌ای زیر بغل داره و مثل پزشکیه که توی بیمارستان به عیادت مریض ها میره. دکتر سین به جولیان میگه سلام. من دکتر سین هستم. جولیان حرکتی از سر تعجب میکنه. دکتر سین لبخند میزنه و جولیان بهش کم کم احساس راحتی دست میده. دکتر بهش اشاره میکنه که بشینه. دکتر سین آهسته بهش میگه که میترسی؟ جولیان میگه یکم. دکتر میگه متوجه شدین کجا هستین؟ جولیان میگه بگین که حقیقت نداره. دکتر میگه با سرعت 200 کیلومتر در ساعت از جاده خارج شدین و زدین به یه درخت. جولیان باور نمیکنه و میگه هیچ یادم نمیاد. دکتر میگه معلومه. خوابتون برده بود. در حالی که رو ورق میزنه میگه بذارید پروندتون رو ببینم. جولین با خودش میگه یه درخت. آقابت این بود که یه درخت لهم کنه. خوبه که تنها بودم. دکتر بی اختیار میگه این نکته به نفع شماست. و ادامه میده چهل ساله. تو خانوادهای مرفه به دنیا آمدیم. تحصیلات خوب. عمل جراحی مهم نداشتین به بیماری وقیمی هم مبتلا نشدیم. جولیان با تلخی میگه آره من یه مرده سالمم. دکتر میگه چندین دفعه شغل عوض کردین. نوعی بی ثباتی باعث میشه هر دو سال یه دفعه کارتون رو عوض کنین. ازدواج هم نکردین. جولیان میگه با این همه قبول هم میکنین؟ دکتر میگه قضاوت نمی کنم دارم گزارش رو میخونم. جولیان که با تمنا و کنجکاوی به دکتر سین نگاه میکنه میگه حتی فکرش هم نمیکردم مرک پاهایی به این قشنگی داشته باشه. دکتر سین میگه می تورم کنین؟ جولیان خورده ادا در میاره که نه و اینا که باعث میشه دکتر بگه از این اداها در نیارین پرونده‌تون نشون میده که تمام عمرتون به شدت دنبال زنا میدویدین جولیان میگه زنا خیلی تون میدواد دکتر میگه شما از اونا تونتر وقتی به دستشون آوردین همه شونو ول کردین جولیان میگه اگه آدم زود متوجه بشه که رابطه زن و مرد عاقبت نداره گناه کرده دکتر با تمسخر میگه در همه کارا توندسرین داره به خاطر تصادفش مسخرهش میکنه جولیان میگه من هیچ وقت با زنی برخورد نکردم که باعث بشه وفادار بشم دکتر میگه یه جوری حرف میزنین انگار دست اونا بوده جولیان عصبی میگه خیلی لذت بخشیدهم خیلی هم به گریه انداختم همش با هم بود اغلب زنهایی که باشون آشنا شدم دنبال عشق نبودن دنبال ماجرای عاشقانه بودن داریم از چی حرف میزنین شما که قرار نیست بهم به نمره بدین لابد نمیخواین نمیخوین این افسانه قدیمی بهشت و جهنم و ارواحی رو که سبوکسنگین میکنن و, می و نامه اعمالشون رو مینویسن به خوردم بدین نمیذارم محکومم کنین من مردم این براتون کافی نیست دکتر میگه شما کاملا تو اشتباهین بعد با آرامش میگه اولین که من دکتر سینم و دوم اینکه شما نمردید فکر کنم اونجایی که میگه من دکتر سینم داره جواب اون حرفش رو میزنه که گفته بود فکر نمیکردم مرگ به این خوشگلی باشه داره میگه من مرگ نیستم من دکتر سینم جولیان که یکی خورده میگه واقعا دکتر میگه معلومه جولیان که از شادی تو پوست خودش نمیگنجه میگه میدونستم میدونستم وای خدا من زنده زنده دکتر میگه ولی نگفتم شما زندهی چهره جولیان تو هم میره و دیگه نمیخواد چیزی بشنوه میگه ببینید من دیگه تا نمیخواد سعی کنم حرفایی رو که اینجا زده میشه بفهمم حالا که سرپا میتونم راه زحمت کنم، دکتر میگه دست شما نیست. جولیان میگه خیال دارین مانعم بشین دکتر با ملایمت میگه دست منم نیست. جولیان میگه ببینید دکتر، نمیدونم چطور سر و کارم به درمانگاه شما افتاد. لابد پشت فرمون اتومبیل خوابم برده بود، رفتم توی درخت، مدتی این هم اینجا بیهوش بودم. ولی الان احساس میکنم حالم کاملا خوبه، هیچ احتیاجی هم به شما ندارم، به شما میکنم تو در حالی که محکم دکمه آسانسور رو فشار میده میگه به این آسانسورم بگین که بیاد دکتر با حرکت یه دست دو دستیارش رو ظاهر میکنه و هر کدوم توی ورودی دوراه رو قرار میگیرن تا مانع جولیان بشن و به جولیان اشاره میکنه که آروم بگیره جولیان میگه آخه یعنی چی خب اگه زندونیام به هم بگین دیگه دکتر میگه جولیان شما تو خطرین یه خطر بزرگ باید حرف بزنیم متوجه میشین. دکتر با حرکت دست دیگش دو تا کارکونه مهمان سرا رو به انتهای اتاق میفرسته اونا از دیوار یه تابلوی نورانی عجیب بیرون میکشن و دکتر ماجرای تصادف جولیان رو براش تعریف میکنه و میگه ترجیح میدم از حال و روز الانتون چیزی نگه جولیان میگه چی دارین میگین؟ دکتر میگه آمبولانس شما رو چند لحظه پیش بیهوش و زخمی با زانو و دنده های شکسته به بیمارستان دکارت آورده. یه گروه پزشکی کاملا متخصص دور شما رو گرفته تا شاید زندگیتون رو نجات بدن. ولی امید چندانی ندارن هر کار از دستشون بر بیاد انجام میدن دکتر تابلویی که ظاهر کرده رو نشون جولیان میده که روی اون تابلو یه سری نشونه ها دارن چشمک میزنن و بالا و پایین میرن دکتر میگه تمام مردها و زنهایی که اینجا اتاق دارن دارن ساعت سرنوشت سازی رو روی زمین میگزرونن پزشکا پرستارا و خانواده مراقب بشونن. تو تنشون پر از لوله و سرم و الکتروده در حالتی به سر میبرن که روی زمین بهش میگن اغما یعنی مرگ و زندگی یعنی اینجا شما هم تو این محل باید منتظرشین تو مهمان سرای دو دنیا اینجا دیگه از درت هایی که تنتون تو اون دنیا میکشه آسوده این جولین هم ماتش برده هم متقاعد شده ولی میگه حرفاتون رو باور نمیکنم. دکتر میگه قذک پاتون درد میکنه. با این حال دو روز پیش پاتون بدجوری جوری پیش خورده بود ورم کرده بود حتی نمیتونستین راه جولیان به راحتی پاشو تکون میده. دکتر میگه میبینید؟ درد نمیکنه. باید منتظر باشید تکلیف سرنوشتتون روشنشه یا نجاتتون میدن و آسانسور شما رو به پایین برمیگردونه یا اینکه نمیتونن به زندگی براتون گردونن، میمیرید و آسانسور شما رو به اون بالا میبره. برای جولیان این حرفا تکون دهنده است. با حالتی منگ و آروم به اطرافش نگاه میکنه. دکتر میگه کار من اینه که اطلاعات کافی برای این گذر تو اختیارتون بذارم. جولیان میگه کی استخدامتون کرده؟ دکتر علامت راهروی ته رو میبینه که خاموش روشن میشه. آمادهی رفتن میشه. جولیان میگه راهروی الف و معنیش چیه؟ دکتر میگه تا حالا حدس نزدین؟ راهروی ت برای تصادفی هست و راهروی الف برای مرگ ارادی یعنی کسایی که خودکشی کردن. جولیان میگه اشتباه کردین. شما منو تو راه روی علف گذاشتی من که خودکشی نکردم تصادف کردم من که عمدن نزدم به درخت دکتر میگه عجب جدی میگه آقای پورتال نه تنها اون موقع الکل تو خونتون بوده بلکه سالهاست که مشروب میخورین مخدرات دیگر رو هم امتحان کردین ولی الکل چیزی بود که همیشه بهتر از بقیه به شما امکان میداد از خودتون فرار کنین کاراتون داشت خراب میشد روزامتون نفسای آخرش رو میکشید شما ابدا براتون مهم نبود چند ماهی میشه که دیگه زدیم به سیما آخر و الانم به طرف تباهی داریم پیش میرین. پس قبول کنین صبح روزی که شما رو پیدا میکنن تا خرخره الکل خوردین و با سرعت 200 کیلومتر زدین به درخت نتیجه میگیرن که خودکشی کردین یه خودکشی طولانی مدت و برنامه ریزی شده. جولیان دهنش باز مونده میگه خودکشی طولانی من دکتر میگه بله الکل خودکشی بیژه هاست. به گفتگو خاتمه میده و میگه خواهش میکنم منو ببخشید. باید به بقیه مریض ها برسم. دکتر خارج میشه. جولین مپوت حرفایی که شنید است. ساکت میشینه و قیباموز یه دفعه سر میرسه. جولین میگه غیر قابل تحمله. قیباموز میگه زندون زندونه دیگه چه فرق میکنه. چه اینجا چه هر جا. تنها راه فرار پنجره های مرگه و هیچ هم نمیدونه این پنجره ها به کجا باز میشه. جولیان مثل حیون تو قفس به دور اتاق میگرده. قیباموز میگه اون پایین هم میدونن سین قراره بمیریم ولی رومونو برمیگردوندیم تا راه ها هنو نبینیم. نمیخواستیم قطار رو ببینیم. به خودمون میگفتیم که قطار بعدی مال ما نیست. اینجا آدم قدر چیزها رو میدونه و سر لحظه استفاده میکنه. حالا دیگه هر لحظه رو مثل آب نبات مز مزه, مزه میکنه. بازش میکنم و طعمشو میچشم. جولیان میگه اینجا چطور میشه تفریح کرد؟ قای میگه آدم اینجا تفریح نمیکنه فقط سرشو گرم میکنه. با کلی آدم آشنا میشین. اگه شانس بیارین و مدت ها تو بخش مراقبتهای های ویژه بیمارستان بمونین میبینید که اینجا کلی آدم میانو میرن. هر روز یکی میاد، بعدش آدمها با هم گپ میزنن. من حرف مهمی نمیزنم. حرف جالبی برای گفتن ندارم. شما هم همینطور. اما داریم گپ میزنیم. و این معنیش اینه که من وجود دارم. شما هم همینطور. این روابط جذابه مگه نه؟ جولیان میگه فایده‌اش چیه؟ حالا اینکه با آدم هایی که مسلمان دیگه هیچ وقت نمی‌بینین روابط انسانی برقرار کنین چه ای داره؟ غیباموز که تظاهر میکنه بهش برخورده میگه اگه فقط مایلین با چیزایی که دوام دارن معاشرت کنین، برین با صخره و کو و سنگ صحبت کنین. اما اگه اون‌ها هم مثل شما سख़ت‌گیر باشن، بعید می‌دونم محلتون بذارن. غیباموز از جا بلند میشه تا بره بیرون. جولیان با لبخند میگه تیرتون خورد به هدف. قیباموز بر میگرده و میگه میبینید که زندگی چقدر میتونه بامزه و جالب باشه؟ منظورم اینه که میبینید اقما چقدر میتونه شادی آفرین باشه؟ جولیان آهی میکشه و میگه همیشه افسردم، همیشه افسرده بودم. قیباموز میگه من فکر کنم شما بچه لوسی بودید چون قیافتون بد نیست. به نظر خیلی هم ندار نمی آید. بچه بچه‌ایون نظر می‌رسیم که وسط اسباب بازیایی که بهش دادن حوصله‌اش سر می‌ره. جولیان میگه یعنی آدم حقیقیه؟ قیواموز میگه ابدا اما بی‌اشتهایی بدترین درد دنیاست. وقتی سیر به دنیا میای قبل از اینکه فریاد بزنی دهنتو پر از خوراکی میکنن قبل از اینکه درخواست کنی بوسه می‌گیری، قبل از اینکه پول در بیاری خرج می‌کنی. اینا خیلی آدمو اهل مبارزه بار نمیاره. برای ما بی اقبال‌ها چیزی که زندگی رو اشتها آورتر می اینه که پر از چیزایی که ما نداری. زندگی برای این زیباست که بالاتر از حد امکانات ماست. جولین آهسته میگه باید زندگی رو ازم می گرفتن تا قدرش رو بدونم. ماری سر می رسه و میگه اگه یه دوره دیگه فرصت داشتم میدونی چی می شدم؟ فیلسوف. ماری مارتین فیلسوف برجست. جولیان خشم بهش میگه حالا اگه آدم فیلسوف باشه میره. می ماری میگه چرا ولی بهتون کمک میکنه که زندگی کنین با نزدیک میشه و میگه به نظر شما اون بالا چه خبره جولیان میگه هیچ ماری میگه مگه اونجا بودی اگه نبودی پس چی میگی جولیان میگه مرگه همین براتون کافی نیست ماری میگه نه من که تا هیچ وقت نمردم فقط یه چیزایی شنیدیم اونم بفهمی نفهمی چون کسی از اونجا برنگشت غیبواموز میگه ولی مردن نمیکنه ماری به خاطر کار قیب آموز ازش میپرسی که خودمونی ما اونا نمیگفتن اون بالا چه خبره منظورش عرواهیه که قیب آموز میکرده قیب میگه نه رئیس وارد میشه و میگه فکر کنم دکتر همه رو دیده الا منو. قیب میگه رئیس عزیز هیچ کس با اون حرفی نزده مگه این آقای تازه وارد و ما هم مثل شمایم. برابری رئیس جان برابری. و این معنیش اینه که با همه ی جور برخورد میشه. رئیس میگه مجبور شدم از اتاقم بیام بیرون. صحبتاشون رو نمیتونستم تحمل کنم. جولیان میگه صحبتای کی رو؟ رئیس میگه زنم و پسرا. جولیان متعجب میگه چی؟ اونام اینجان؟ با شما؟ دیبا به جولیان توضیح میده که وقتی ها به اتاقشون میرن میتونن حرفای اون پایین و صحبتایی که بالای تختشون میشه رو بشنون. کافیه دستاتونو بذارید روی گوشاتون. ماری میگه آدم خوشبختی هستی که همه خانوادت بالای سرت. رئیس میگه اگه می‌دونستین چیا می‌شنوَم. ماری میگه خب از چی حرف میزنن؟ رئیس انگار که خیلی بدیهیه میگه از پول دیگه. از چی می‌خوای حرف بزنن؟ میخوان همه چی رو بفروشن. ماری میگه براشون مانو گذاشتی؟ رئیس خورده بهش برخورده میگه معلومه منو دسته کم گرفتین الانم ترجیح میدم برگردم به اتاقم ببینم چطور این پسرای بیورزم می‌خوان پولامو به باد بدن. و رئیس اینجا میره بیرون. یولیام میگه اون رئیس کجاست؟ <تصفيق> قیباموز میگه اون اصلا رئیس متولد شده. تو مهد کودکم بین هر دو تا شیش شیری که میخورده شعر شعار میداده من رئیسم و همین طورم شده. دکتر با دو تا دستیار برمیگرده. ماری بی بیهوا دستشو میگیره و التماس میکنه. دکتر تو رو خدای خبری از حال روزم بهم به بدین. دکتر میگه هر وقت خبری داشتم شما رو توی جریان میذارم خانم مارتین. فعلا وضعیت شما ثابت. از اتاق میره و میگه منو ببخشید ماری معیوس خودش میندازه روی مبل و میگه ثابت این معنیش اینه که تکون نمیخورم. مثل یه تخت چوب پر از لوله با دستگاه هایی که بیپ میکنن همینطور افتادم رو تخت. قیباموز میگه ای بابا شجا باش منو ببین قیباموز میگه ای بابا شجا باش منو ببین الان 6 ماه میشه که اینجا ماری صادقانه میگه 6 ماه تو این وز. من کتاب نمیارم باید لوله ها بکنم جولیان میگه تو خودتو دوست نداری؟ ماری میگه تو کسی رو میشناسی که خودشو دوست داشته باشه؟ هر دوشون بعد از اینکه فکر کردن گفتن نه. جولیان با مکس میگه مطمئنم یه عالم اشق و محبت نصاره بچه هات گردی. ماری میگه خب معلومه این چیزا تو طبیعت آدمی تا تازه اگه آدم بیشتری دنبال محبت هم بودن میتونستم کلی بیشتر از این اشق ببخشم. البته کم تقصیر خودم هم هست. من با بچه ها بهتر از آدم گنده ها تا تمیکنم. خلاصه میدونم باشون چی کار کنم و خوشحالشون کنم. با این آدم گنده ها وحشت می کنم دیگه نمیدونم چی کار کنم. دست و پا می کنم رئیس دفترچه تلفن بدهست. بر میگرده و میگه که بچه هاش سهامش رو توی بورس به باد دادن و باید حتما با دکتر صحبت کنه. خیلی هم خودش رو به درو دیوار میزنه. دکتر همراه دو دستیارش ظاهر میشه از اتاق میگذره بدون اینکه به ها توجه خاصی کنه رئیس میگه آهای دکتر سین دکتر از جلوش میگذره و رئیس میگه صداتون ها. دکتر بدون اینکه روشو برگردونه میگه آقا منو صدا میکنن. رئیس میگه ولی من مسررم میخوام دکتر حرفشو قطع میکنه و میگه شما چیزی نمیتونی مطالبه کنین هر وقت نوبتتون برسه باهاتون حرف زده میشه رئیس دماغو ساکت میشه دکتر بیرون میره و غیب که داش با صدای آهسته با جولیان صحبت میکرد میگه بهش سوالاتت رو باید از رئیس بپرسی چون اون یه احمقه به تمام عیار جولیان میگه آقای رئیس بیاین پیش ما شاید بتونین کمکمون کنین داشتیم از خودمون میپرسیدیم بعد از مرگ چی میشه رئیس میگه خب مگه شما تعلیمات دینی نخوندیم پس چی یادتون دادن جولیان میگه هیچ رئیس میگه اول میریم با آسمون و اونجا به نامه اعمالتون رسیدگی میشه و یه بچهم اینو میدونه به هر حال نوههای من که میدونن جولیان میگه شما از این لحظه نمیترسین رئیس میگه نه من خودمو آماده کردم جولیا میگه پس وجدانتون پاک پاکه رئیس میگه معلومه قیبا میگه ولی این های مالیتون چی آقای رئیس دل بک نمیترسین که موقعی رسیدگی رئیس میگه اول باید ثابت کرد آقا قیبا میگه گوش کنین گمان نمیکنم که سر نگهداریه بانک سوئیس یا لوکزامبورگ اون بالا تو اون دنیا هم رایت بشه به چهل سال قاچاق و رسیدای جعلیتون رو بشه پنهان کرد رئیس میگه خطای جزئیهژلیان میگه خب از خودتون رو میبخشید قیباموز میگه فوق است مدت فکر می آدمایی که اعتراف میکنن وجدان اخلاقی والایی دارن ولی حالا متوجه میشم همونطور که استفراغ میکنن اعتراف میکنن بالا میارن تو دوباره شروع کنن. همین لحظه صدای زنگ بلند میشه، دکتر سر میرسه از اتاق میگذره و متوجه میشه که روی تابلوئ نامرئی چراغ قرمز شده و چشمک میزنه. قیباموز میگه یکی از ما باید بره. جولیان میگه کجا؟ بالا یا پایین؟ قیباموز میگه تا دقیقه آخر معلوم نیست. تو آسانسور میفهمیم. دکتر به طرف مهمونا برمیگرده. دکتر میگه میشه تنها بذارین؟ همه نفس راحتی میکشند. زنگ همچنان ادامه داره بلندتر و دللهور آورتر در لحظه آخر دکتر ماری رو نگه می داره. دکتر میگه مادام مارتین ممکنه با من بمونین بقیه با تجب به هم نگاه می کنن. کارکنان سفید پوش وارد میشن دکتر به ماری که کمی هم می و هم لبخند میزنه نزدیک میشه ماری میگه نوبت منه دکتر میگه بله ماری میگه ایشالا که خیره دکتر میگه اجازه ندارم بهتون بگم دکتر بازوش رو میگیره و کمکش میکنه وارد اتاقه که آسانسور بشه ماری میگه آره بهتر کمک هم کنی چون قلبم ضعیفه با امزهس مگه نه که اینقدر قلبم خسته است تنها چیزی که هیچ وقت ازش استفاده نکردم دکتر میگه قوی باشین از هیچ چی نترسین خداحافظ خانم مارتین ماری میگه خداحافظ دکتر درهای آسانسور بسته میشن همه سرک میکشن تا ببینن چه بر سر ماری میاد علامت آسانسور بالا رو نشون میده و بعد سکوت سنگینی جمع رو فرا میگیره اونجایی گفتیم که آسانسور ماری رو به سمت بالا میبره و بعدش سکوت سنگینی جمع رو فرا گیره. قیباموز با گفتن جمله زن بیچاره سکوت رو میشکنه. دکتر به چراغ ای که روی تابلو اعلانات روشن شده نگاه میکنه و بعد به طرف دستیارهاش برمیگرده. دکتر میگه یکی دیگه داره از راه میرسه و بعد میره تا پروندش رو بیاره. قیب آموز کمی خوشحال میشه. همه منتظرن. صدای مهیب و طوفانی که ابتدای نمایشنامه نامه درباره صحبت کردم رو یادتونه وقتی جولیان اومد دوباره همون صدا به گوش میرسه. وقتی قطع میشه صدای زنگ آسانسور میاد. در آسانسور باز میشه و دختر موبور جذابی که لبخند میزنه از اتاقک آسانسور بیرون میاد. به نظر شیفته میرسه اسم دختر لوراست میگه سلام قیباموز از جا بلند میشه تا ازش استقبال کنه و بهش میگه سلام نترسید لورا میزنه زیر خنده میگه برای چی باید بترسم قیباموز میگه جولیان رو بهتون معرفی میکنم لورا با کنجکاوی به جولیان نگاه میکنه جولین سر بر میگردونه و انگار که میخواد عمدن جادوی این فضا رو بشکنه همه خودشونو معرفی میکنن و لورا میگه خیلی خوشحالم که اینجا رئیس میگه دختر بیچاره خیال میکنی کجایی؟ لورا میگه همین که میتونم عادی راه برم بدون دستگاه و فشار و انقباز و درد معلومه کجا بعدشم از شر این لوله ها و سند و دم و دستگاه خلاص شدم قدم رقص برمیداره و میگه دلم میخواد برقصم. قیب آموز به دو نفر دیگه میگه دختری بیچاره لابد فکر میکنه مرده دکتر وارد میشه و با دیدن لورا لبخند میزنه دکتر میگه سلام لورا و لورا میگه سلام دکتر سین جولیان با تعجب میگه شما چطورم دیگه رو میشناسین دکتر میگه لورا قبلا اینجا بوده لورا میگه حتی نزدیک بود یه بار دیگم بیام دفعه اول وقتی بود که بیهوش شدم از جسمم خارج شدم و رفتم توی راهروی مارپیچی احساس می کردم سبکه سبک شدم و به طور مارپیچ دارم بالا میرم انگار به طرف نوری که خوب دیده نمیشد کشیده می شدم و درست قبل از رسیدن به مرحله خیره کننده دوباره برگشتم پایین و بار دوم هم سه روز اینجا بودم جولیان نمیتونه جلوی کنچکاویشو بگیره میگه بیماریتون وخیمه لورا بدون کوچکترین هیجانی میگه سلامتی با من قهره دکتر میگه لورا میشه بریم تو اتاقتون؟ لورا میگه وای نه دکتر میگه باید حرفای ای بهتون بگم لورا میگه سلامتی من موضوع ای نیست از بچگی عادت کردم همه درباره بارش حرف بزنم دکتر اصرار میکنه که برم تو اتاق لورا با قاطعیت و ملایم میگه نه چه خبری میخواییم بدین؟ این که دیگه قلبم تقریبا اصلا نمیزنه؟ اینکه اگه فورم پیون نزنم به کلی بای میسه. همه اینا رو خودم میدونم میدونم که زندگیم این به شانس و تقدیره میدونم یه نفر دیگه باید فورم بمیره تا قلبش رو بدزدم خودم همه این چیزها رو میدونم دکتر با لبخند میگه شما عوض نشدین لورا میگه چرا وقتی میخواین حرف سلامتی میشه قیافه عبوس و جدی به خودم بگیرم هرچی میخواد بشه بشه دکتر میگه پس تا بعد لورا کوچولو لورا میگه قبل از اینکه بیام داشین چیکار میکردین قیباموز میگه مثل همیشه از هم بد میگفتیم گاز میگرفتیم تا دندونامونو تیز کنیم. لورا میگه خب ادامه بدیم. غیباموز میگه هنوز اونقدر نمیشناسیمت که ازت بد بگیم لورا میگه خب من یه فکری دارم بعد از کمی سکوت ادامه میده و میگه دلم میخواد که یکی از شما بره توی خط تور کردن من رئیس میگه چه مسخره لورا میگه نمیخواین فقط محض خنده میدونین به خاطر مریضین پسرا هیچ و خیلی دوروبرم نمیگشتند در حالی که اینجا هیچی واقعی نیست هیچی دووم نداره. شاید شما بتونین تظاهر کنین. جولیان میگه تظاهر به چی؟ دورا میگه من تظاهر می‌کنم عادی‌ام. ببینین میتونم حرکت کنم، دور خودم به چرخه‌م، و شما هم تظاهر کنین که دلتونو بردم و میخوایم با من سر و سری داشته باشین. تو رو خدا بگین آره. رئیس میگه نه. لورا میگه فقط محض خنده. قیباموز میگه باشه من یکم میرم تو نختون. لورا میگه یکم؟ قیباموز میگه نه، یه عالمه. لورا مشعوف میشه. غیباموز به جولیان نزدیک میشه و توی گوشش با صدای آهسته میگه این کار شماست شک ندارم که یه ذره محبت شما رو به یه عالم قربون صدقه ای من ترجیح میده جولیان میگه رو من حساب نکن بعدشایی از غیباموز اصرار و از جولیان انکار جولیان میگه نمیخواد حرفای علکی که هزار بار تا الان به همه زده رو به لورا هم بزنه ولی باز غیباموز اصرار میکنه و آخرش هم جولیان بدون اینکه قبول کنه تو خودش فرو میره بعد قیواموز به لورا نزدیک میشه و بهش میگه بگو ببینم دخترم میخوای از کجا شروع کنم از ماه و ستاره و گل و شروع کنم یا یعنی اینکه مستقیم برم سراغ تو لورا میگه نه از من شروع کن قیواموز تلاش خودش رو میکنه ولی خیلی موفق نیست لورا میگه وای چقدر خوب که در میارین قیواموز متعجب میگه چی لورا میگه عدای دست و پا گم کردن و دیگه قیباموز که حالا تشویق شده دوباره سعی میکنه اما همینطوری دهنش باز و بی صدا میمونه لورا با شور و حرارت تشویقش میکنه و میگه آره خیلی خوبه قیباموز هی چند بار میگه بابا من در نمیارم ولی لورا اصرار داره که خیلی خوبه و برای اینکه اولین بارشه این حس بهش دست میده و خیلی حالش رو خوب کرده رئیس و جولیان یه خورده تا الان داشتن قیباموز رو مسخره میکردن ولی اینجا قیباموز فاتحانه به دو نفر دیگه نگاه میکنه و اونا شونه بالا میدازن این حس فاتحانش هم به خاطر تعریف لوراست لورا میگه خب بازم ادامه بدین قیباموز آموز با بدبختی بدترین جمله قراردادی رو به زبون میاره میگه دختر خانم شما خیلی زیبایید لورا میگه ولی شما هم خیلی خوش قیافه اید رئیس و جولیان میزنن زیر خنده. قیباموز خج میگین به طرفشون برمیگرده و بهشون میگه شما کارو زندگی ندارین؟ جای دیگه نباید برین؟ لورا دست قیباموز رو میگیره تا آرومش کنه. باز بهش میگه که خیلی خوب اداش رو در می آوردین قیواموز میگه ادای چی رو؟ لورا میگه ادای حماقت رو. آخه آدم وقتی عاشق میشه احمق میشه. دکتر وارد میشه. میگه ازتون می‌خوام که منو با جولیان تنها بذارین. جولیان از ترس بدنش لورا وقتی از جلوی جوان میگذره با باهاش حرف نزنه میگه خوب کاری کردیم مورد این بازی نشدین. رو زمین حتما عاشق دلخسته شما می شدم. بدون اینکه به جولیان فرصت عکسول عمل بده خارج میشه. دکتر میگه شما الان وارد اتاق جراحی شدی. تیم پزشکی متوجه خون ریزی داخلی شده. جولیان میگه، جون سالام به در میبرم دکتر میگه همه این سایه شونو میکنن زمان سختی رو داری میگذرونی جولیان میگه خب چرا داری بهم به میگی دکتر میگه نمیخوام چیزی رو ازت مخفی کنم و بعد به طرف خروجی میره جولیان تو استراب فرو رفته لورا بهش میگه نترسین جولیان بهش میگه اگه جای من بودی حال تو میپرسیدم لورا میگه ولی من هستم جولیان به خودش میاد و میگه منو ببخشین هیچ جدی از این نیست که آدم خودشو تک و منحصر به فرد فرض کنه بعد از لورا میپرسه هیچ فکر کردی که اون بالا چه خبره لورا میگه امید دارم جولیان دلسرد میگه چطور میشه آدم اینقدر خوشبین باشه لورا میگه کار دیگه‌ای نمیشه کرد به خودم عادت دادم به همه انرژی بدم لابد دلیلش اینه که تو عزولاتم نیرو ندارم زندگی رو دوست دارم با عشقی یه طرفه ولی با عشقی دیوونه وار مرگ رو هم دوست دارم جولیان نمیخواد به خودش اعتراف کنه که لورا منقلبش میکنه به لورا میگه باید خیلی مورد توجه مردها باشی. لورا میگه نه، مردها از من میترسن. آدم نمیتونه فکرش رو هم بکنه که یه پسر جدی عاشق من بشه. همه میدونن که عمر زیادی در پیش ندارم. میدونن که احتمالاً نمیتونم نه بچه‌ای تو شکمم نگه دارم، نه به دنیا بیارم. رو زمین من بدل یه زن هستم. کسی با من آینده‌ای نداره. اونجا آدمها طوری زندگی میکنن که انگار نامیرا و جاویدانن. اونا عاشق نمیشن. گذاری میکنن. جولیان میگه حرف تو باور نمیکنم. کنم. لورا میگه یه باری مرد جوونی به هم ابراز عشق کرد. به بهم تلفن میکرد. به دیدنم میومد برام گل میفرستاد. بهم میگفت که مهمترین زن زندگیشم. نزدیک بود حرفاشو باور کنم. تا یکی از دوستام جریانو برام تعریف کرد. خواهر دوقلوی این پسر چند سال قبل از مریضی مرده بود و این نمیتونست با این غم ودا کنه و میخواست اینطوری جبران کنه. میفهمید؟ از ورای من کس دیگه مد نظرش بود. من وجود نداشتم براش مثل شیشه شفاف بودم بعدش دیگه نخواستم ببینمش جولیان میگه خب اون پسر الان کجاست لورا میگه با یه دختر خانم عادی ازدواج کرده منتظر یه بچهند و تو خوشبختی هم غرقند عشقش برای من یه قسمتی از عزاداریش بود با مکس میگه از طرحم متنفرم طرحم نمیخوام فکر میکنی زیادی خودخواهم صدای زنگ حرفاش رو قطع میکنه تابلو چشمک میزنه دکتر و دستیارا از راه میرسن دکتر وضعیت رو میسنجه و به طرف جولیان میره میگه جولین نوبت شماست جولین از ترس خشکش زده میگه من؟ دکتر میگه بله به طرف آسانسور بری جولیان از جا تکون نمیخوره دستیارا اونو به طرف آسانسور میبرن دکتر دستش رو روی شونش میذاره تا آرومش کنه اما جولیان قادر نیست این زنگ گوشخراش رو تحمل کنه جولیان با خودش میگه میمیرم مطمئنم که میمیرم یهو خودشو از دستای دکتر بیرون میکشه و به سمت لورا برمیگرده میگه میترسم لورا میگه بیخود من هیچ وقت نمیترسم جولیان میگه لورا من میترسم با من حرف بزن لورا میگه چی میخوای بهت بگم جولیان ملتهب میگه از خودت بگو زود باش از خودت زود باش فقط یه دقیقه وقت داری کجا زندگی میکنی؟ لورا با عجله میگه توی خونه بزرگ کنار دریا با پنجره به وسط افق جولیان میگه ساحلم داره؟ لورا میگه آره طولانی سفید و آبی عاشق اینم که من رو روی ساحل به گردش ببرم جولیان میگه بعدش دیگه چی کار دوست داری بکنی؟ لورا میگه دوست دارم تو رویا فرو برم موسیقی گوش کنم. و وقتی موسیقی گوش میکنم صدای سکوت اطرافم رو هم بشنوم بعدش هم دوست دارم کتاب بخونم دیوون بار. تا تمام زندگیایی رو که من نتونستم بشناسم تجربه کنم جولیان میگه بعد چی لورا میگه بعد هم به نظر میاد که دلم میخواست عاشق باشم جولیان مسترب میگه آخ منم همینطور در حالی که به لورا نگاه میکنه صادقانه میگه که چقدر زیبایی. لورا نگران میگه واسه چینو میگی زنگ دوباره به صدا در میاد ولی آسانسور هنوز نرسیده. جولیان از این لحظات آخر استفاده میکنه. میگه برای اینکه از همون ای که دیدمت به نظرم رسید که تو خیلی زیبایی اما به خودم زحمت ندادم بهت بگم. به نظرم اومد تو شگفتنگیز عجیب و العاده هستی. مثل یه مروارید اصل. فکر کردم من خوش‌قیافه نیستم اما چه اهمیتی داره چون اون به اندازه هر دومون زیباست. دورا میگه لطفاً ساکت شو. جولیان میگه بعد دکتر شما رو لورا صدا زد. لورا دو هجای ساده مثل سلام. سلام. سلام لورا. فکر کردم من اسمم جولیان اما چه اهمیتی داره چون اسم اون به اندازه هر دوتامون آهنگینه. لورا میگه ساکت شو. جولیان بدون اینکه متوجه باشه اعتماد به نفس گرفته. میگه بعد دیدم چطوری جلوی دکتر سین باشدید. من و یاد کشتی انداختی که با بارون و موج و طوفان در میافته فکر کردم من خیلی دل و جرعت ندارم اما چه اهمیتی داره چون اون به اندازه هر دومون شجاعه لورا میگه گفتم ساکت شو جولیان میگه و همین که این قدرت رو دیدم متوجه زعفش هم شدم ضعفی که ناشی از تنشیه که قدرت به وجود میاره این قدرتی که میتونه ناگهان به هم بریزه پس به خودم گفتم شاید احتیاج به یه دستی داشته باشی توی زندگی دیگه زندگی که دیگه تو اون شکست نمیخورم اونو خراب نمیکنم و دو دستم برای خدمت به تو خواهد بود اینا اون چیزایی که نگفتم بهت الانم چیزایی هست که نمیگم بهت اینکه دلم میخواست با تو توی خونه بزرگ کنار دریا بودم با هم موسیقی و سکوت گوش می‌کردیم و کاری می‌کردیم که کمتر به و بیشتر به جاش زندگی کنی لورا میگه ساکت شو جولیان میگه برای اینکه ناگهان اینجا در برابر تو یه التهابی و میگیره بهم اشتها میده شوق و هیجان میده التهابی که قادر دنیا رو به هم بزنه قادر پاهاتو تو بهت برگردونه تو رو تو آغوشم له کنه مرگ رو دور کنه عجیبه انگار دیگه نمی ترسم. صدای زنگ قطع میشه سکوت سهمگینه جولیان و لورا متحیر برجا میمونن دکتر میگه اشتباه شده بود هنوز وقتتون نرسیده بود یای پیش میاد آن. انگار تو عمل جراحی یه اتفاقی افتاده بود من باید برم جولیان و لورا از پا در اومدن. سرنوشت میخکشون کرده. دکتر موقعی رفتم میگه از این سواتفاه تفاهم متاسفم. جولیان میگه دیگه دیر شده. من بهش گفتم. لورا آروم میگه چی رو گفتی؟ جولیان میگه اینکه دوست دارم. لورا وحشت زده میگه نه نگفتی. جولیان میگه چرا؟ چرا گفتم؟ لورا میگه نه تو فقط درباره چیزای عینی حرف زدی مثل اینکه دلت میخواد با من توی یه خونه باشی و موسیقی گوش کنی. نه. جولیان میگه قبلا این کلمات رو لب هام صدها بار برای آدمای دیگه شکرار کرده بودن اما انگار همیشه جزء حرکت ورزشی بودن الان برای اولین بار تو زندگیم وقتی اداشون میکردم احساسشون کردم احساس کردم این کلمات آدم رو میسوزونه لورا میلرزه و میگه تو هیچی نگفتی جولیان عمیقا به لورا نگاه میکنه از جاش بلند میشه و بهش نزدیک میشه آروم لورا رو میبوسه لورا متوقفش میکنه تا سوال کنه بهش میگه تو که دلت برام نمیسوزه مگه نه جولیان میگه ابدا حتی یه لحظه دوباره هم دیگر رو میبوسن لورا خودشو تو آغوشش رها میکنه لورا با اشک توی چشماش میگه عادلانه نیست روز هیچ وقت نترسیده بودم و حالا میترسم و دلم میلرزه جولیان میگه از چی میترسی لورا میگه می ترسم تو رو از دست بدم. قیباموز بر برمیگرده و اونا رو تو آغوش هم میبینه میگه وای ببخشید متاسفم. جولیان شادمانه میگه انگار از وقتی همه چی رو به همه متاسفن. دکتر میگه میخوام با جولیان حرف بزنم. لورا نگران میگه اون رو از من نگیرید. دکتر بهش لبخند میزنه. لورا میگه اون همینجا میمونه. منم هم همینطور. دیگه هیچ دلش نمیخواد خوبشه. دکتر به جولیان نزدیک میشه و میگه فهمیدم چی شده بود. یا نزدیک بود از اقما بیای بیرون جولیان با لبخند میگه آره درست اتفاقیه که الان افتاد مه قلیز از بین رفت لورا چی دکتر میگه نمیتونم چیزی بگم فقط همین که باید یه قلبی پیدا کنن که بهش پیوند بزنن تنها راه چاره است جولیان میگه شانسی هست دکتر میگه دقیقاً شانس کلامی درستشه باید یه نفر بمیره تا اون زنده بمونه یه نفر که به بیمارستان سن بیارنش و اون هم در عرض چند ساعت جولیان میگه پس شما هم نمیدونین دکتر میگه من هیچ وقت نمیدونم کی میمیره و کی زنده میمونه جولیان میگه یعنی خدای یا شیطان یا هر کس دیگه به شما خبر نمیده اصلا توی این پرونده های شما چی نوشته دکتر پرونده هاشو توی بغلش فشار میده و میگه اطلاعات جولیان میگه بفرمایید میدونستم دکتر میگه تو این پرونده های یه سری اطلاعات جزئی درباره شماست کتاب تقدیری وجود نداره فقط چند تا نشانه روی برگه است با این اطلاعات چیزی رو نمیشه محاسبه کرد شما آزادی هر طور میخواید زندگی کنید جولیان میگه الان لورا آزاد بود هر طور میخواد زندگی کنه اون با بدن از کار افتاده به دنیا آمد دکتر میگه میتونست انتخاب کنه که این بدن رو تحمل نکنه اداهای مریضا رو دراره خودشو تو افسردگی غرق کنه و خیلی هم زود بمیره انتخابش این بود که با این حال زندگی رو دوست داشته باشه شاد باشه سبک باشه و به همه چیز عشق ببرزه تولدش اون تو سایه گذاشته بود اما اون نور رو ترجیح داد و انتخاب کرد هر کس با لورا برخورد کرده از اون خاطره ایم مثل آفتاب داره میگه دوستش دارم دکتر میگه متوجه شده بودم جولیان میگه احمقانه است نه دکتر میگه این که آدم یکی رو دوست داشته باشه نه اما شرافتمندانه از خودتون سوال کنید که واقعا لورا رو دوست دارین که فقط برای این عاشق شدین که غیر ممکنه. این پرسش دکتر جولیان رو تکون میده دکتر میگه میرم لورا رو ببینم چند لحظه منو با اون تنها بذارید زمانی که دکتر خارج میشه رئیس باهاش برخورد میکنه و دکتر همون لحظه ناپدید میشه رئیس میگه خب معلومه همین که من سر میرسم دکتر غیبش میزنه جولیان میگه آقای رئیس اصلا متوجه شدین که دکتر از صبح تا شب داره چیکار میکنه داره آدم ها رو به طرف مرگ و زندگی هدایت میکنه کار تقدیر رو داره انجام میده رئیس میزنه زیر خنده و میگه نه بابا نکنه شما هم فرجی راجاپور قیباموز رو در این مورد باور کردین شلیه میگه خب آره رئیس میگه اینا همش چرتوپرته و تکلیف زندگی آدم ها رو نمیشه با یه آسانسور و مهمون سر رو کرد رئیس فکر میکنه که توی تیمارستان افتادن، و خودشم اشتباهی بعد از زمین خوردنش به تیمارستان آورده شده جولیان میگه چطور توجیهم میکنی که پیچخوردگی پام دیگه عذابم نمیده و لورا که حالت عادیش روی صندلی چرخ داره اینجا میتونه چرخ بزنه و حرکت کنه رئیس میگه با نیروی تلقین جولیان میگه و اینکه از اتاقت حرفای همسرت و پسرتو میشنوی چی رئیس میگه دقیقا فقط این نکته عجیبه ولی اینم باید یه توجیهی داشته باشه جولیان میگه توجیهش دقیقا همون چیزیه که انکارش میکنی رئیس میگه ای بابا دوست جوان یکم عقلت رو به کار بنداز وجود چنین جایی غیر ممکنه هیچ جا ازش حرفی زده نشده اگه شما هم مثل من تعلیمات دینی خونده بودین میفهمیدین که ما مستقیما به طرف خدا میریم جولیان میگه شاید خدای شما توی مرحله بعدیه رئیس میگه یاوست توی موتون نیومده. جولیان میگه آخه چطور میتونی اون چیزی که توی اطرافت میگذره رو انکار کنی من اینجام شما اینجایی ما اینجاییم چطور میشه واقعیت رو برای شما صرف کرد چطور میتونی از کنار آدمها و وقای بگذری بدون اینکه نگاه کنی رئیس میگه خیلی ساده است عزیز من اسمش باور و یقینه قیواموز در حالی که لورا بازوش رو گرفته وارد میشه میخنده و خوشحال به نظر میرسه لورا به قیواموز میگه چه حیف که شما دفعه پیش اینجا نبودین قیواموز میگه امیدوارم که تو مدت ها اینجا پیش ما بمونی لورا به جولیان نگاه میکنه و میگه منم امیدوارم جولیان و لورا به هم نزدیک میشن و همدیگه رو نگاه میکنن رئیس کلافه میره بیرون و صدای کوبیدن در اتاقش میاد جولیان میگه حالا سختره لورا میگاره. جولیان میگه دیگه نمیدونم چی باید بگم لورا میگه آره جولیان حس میکنه کسی زیر نظرش داره به قیبا آموز میگه مزاحمت که نیستیم قیبا میگه نه نه ابدا این حرفا چیه روزامش رو باز میکنه و میگه وقت مناسبیه برای روزنامه خوندن لورا میگه کاریش نداشته باش آدم نازنین نیه جولیان و لورا دوباره به هم نگاه میکنن و جولیان میگه عشق ما آینده ای نداره لورا میگه آینده هیچ اهمیتی نداره جولیان میگه با توه رئیس خشمگین سر میرسه و به طرف قیباموز هجوم حجوم میبره و روزنامه رو از دستش میکشه میگه لطفا صفی بورس رو بدین به من اون صفر رو میکنه و بقیه رو پرت میکنه روی زمین قیباموز آموز با تمسخور میگه به ملاحظه کنید رئیس میگه پسر خنگم ادعا میکنه که سهام شرکت روبینا پایین اومده ستون مورد نظرش رو توی روزنامه پیدا میکنه و میگه ولی این که همون روزنامه دیروزیه قیباموز میگه خب معلومه و همون روزنامه پریروزی شیش ماه پیش وقتی اومدم با خودم آوردمش هر روز میخونمش رئیس میگه احمقانه است بعد بین رئیس و قیباموز یه بحثی شکل میگیره که توی اون قیباموز داره اثبات کنه یه روزنامه قدیمی که چندین بار خونده چطور هنوز جذابه؟ و قافلگیرش میکنه تا اینکه صدای زنگ به گوش میرسه دکتر و به دنبالش دستیارهاش وارد میشن و به طرف تابلوی اعلانات میرن همه با دلحوره به دکتر چشم دوختن جولیان لورا رو توی بغلش فشار میده دکتر میگه آقای رئیس نوبت شماست رئیس با حالت راضی میگه بالاخره خیلی وقت بود که باید به این اشتباه فجیح خاتمه داده میشد دکتر میگه آقای رئیس باید درک کنید که من نه حقش رو دارم نه قدرتش رو که بین شما و سایرین استثناء قائل هم. همینطورم اختیار ندارم که کاری رو تسریع کنم رئیس که این توجیه نرمش میکنه میگه خیلی خوب خیلی خوب حالا که همه چی درست شده دیگه عرفش رو نزنیم دکتر میگه آقای رئیس عزیز امیدوارم که این اقامت براتون فرصتی برای تعمق بوده باشه رئیس بدون تأمل میگه بله فکر می که وصیت عوض کنم دکتر بدون اینکه گوش داده باشه میگه خیلی خوب رئیس میگه حداقل ممکن رو به خانومم میدم پسرام رو از ارث محروم میکنم و یه بنیاد تاسیس میکنم دکتر بدون اینکه گوش داده باشه میگه خیلی خوب ممکن تشریف ببری توی آسانسور دکتر به دستیارهاش اشاره میکنه که به رئیس کمک کنن در آسانسور در حال بسته شدنه ناگهان رئیس اعتراض میکنه و میترسه از دکتر میخواد اجازه بده بیرون بیاد اما در بسته میشه صدای فریادهای رئیس دیگه به گوش نمیرسه. همه با دقت به علامت آسانسور چشم دوختن تا ببینن رئیس کجا میره پس از چند ثانیه علامت زمین رو نشون میده صدای زنگ قطع میشه جولیان با انزجار میگه چی قیباموز میگه داره به زمین برمیگرده خطاب به دکتر میگه بگین که حقیقت نداره به اون یه بار دیگه فرصت دادن دکتر میگه اون از اقما در اومده رئیس همیشه آدم سالم و تندرستی بوده قیباموز میگه مسلما فقط آدمای خودکاه میتونن سالم باشن دکتر میگه ضمنا فراموش نکنید که فقط یه دوچرخه بهش زده بود قیباموز میگه آدرس دوچرخه سواره رو بدیم من براش تانک بخرم جولیان میگه که اینطور شما میزنین که ماری بمیره و رئیس رو زنده میکنید دکتر میگه من اصلا ربطی به من نداره مارک نه مكافات نه قصاصه و نه پاداش برای هر کدوم از شما مرگ مسئله شخصیه و این کاملا مسخره است هیچکس ازش گریزی نداره مرگ حقه بهتره به زبون خودتون بگم من تا حالا کسی رو ندیدم که سزاوار مردم باشه جولیان میگه یعنی میخوای بگی آدمکشا اینجا سر پیدا نمیشه دکتر میگه اونا معمولا با مرگ ناگهانی میرن برای رئیس هنوز وقتش نرسیده بود قيباموس خشمگین میگه دختر من چی ها برای دختر 20 ساله من وقتش رسیده بود جولیان و لورا با تعجب به طرف قیباموز برمیگردند. دکتر به طرف قیباموز میره و میگه شما نظر من رو خوب میدونین قبلا در این باره صحبت کردیم در ده سالگی، 20 سالگی، هشتاد سالگی یا 100 سالگی به هر حال همیشه هممون زندگی رو از دست میدیم قیباموز فورا آروم میشه و میگه من رو دکتر میگه زندگی هدیه یه که تقدیم همه شده. مرگ هم همینطور. برای همه است. رئیس هم یه آدمی مثل بقیه. قیباموز میگه من حاضرم به همه احترام بذارم. فقط برام یکم سخته که با آدم‌هایی که به هیچ کس احترام نمیذارن احترام بذارم. دکتر بیرون میره. جولیان میگه دخترتون؟ شما یه دختر داشتین؟ قیباموز حرفش رو پس میگیره و میگه من نه. جولیان متوجه میشه که جولی نکنه. لورا حوشمندانه لبخند میزنه و هرسه میشینن. قیباموز میگه خب دختر کوچیلو بگیم ببینم اون پایین شما رو میتونن از زقما در بیارن. لورا میگه دیگه از دست اونا خارجه. منتظره قلبی که به هم پیوند بزنن. قیباموز میگه تو خیلی قوی هستی. لورا میگه از اونجا که بدن سالمی ندارم سعی کردم جور دیگه ای قوی باشم. جولین دستش رو میگیر و می لورا به آرومی میگه من گل نکاشتم انقدر تو زندگی مریض احوال و بستری بودم که مجبور شدم تمایلات آرزوهام رو محدود کنم از اونجا که نمیتونم برم گردش یه گل تنها همونقدر سرمستم میکنه که یه روز گردش توی باغ گل سرخ یه عشقی آفتاب که از درسهای کرکره میلغزه تو اتاق به هم این حسو میده که دارم حمام آفتاب میگیرم میذارم عشقی آفتاب رو تنم بیاد پایین گردنم رو گرم کنه روی هم بلغزه بیاد روی سینه هم و سنگین کنه و وقتی که ازم دور میشه و برای همیشه بالای دیوار محف میشه احساس سرما می کنه. صدای بارون و رعد و برق روی پشت من منو با خودش به تمام دریاهای عالم میبره. با طوفان روی دریا کشتی هایی که انواج سهمگین تکونشون میده آشتام میکنه و فردا صبحش وقتی همه چی آروم گرفت ساحل آبی خاکستری رنگ رو میبینم که مثل پاداش بعد از این شب توفانیه من میتونم مثل بچه گربه ها با یه حلق کامبا ساعتها خودم سرگرم کنم جولیان اینجا دوباره لورا رو میبوسه لورا ادامه میده راستش خوشبختی تو کف دست آدمه کافی بی حرکت بمونین همه چی رو فراموش کنین دیروز و فردا رو ازیاد ببرین اگه آدم بتونه خودش رو کنه و توی کنار پنجره لم بده. و دردمو لحظه حاضر زندگی کنه میتونه از تمام مواهب عالم لذت ببره سعادت واقعی رو چیزهای کمی میسازه غیب پشت صفحه روزامه مخفی میشه جولیا میگه آیا ممکنه در یک لحظه اینقدر عمیق نهفته شده باشه لورا میگه یه لحظه قادر ابدیتی رو در خودش جای بده ناگهان لورا در هم میره و شروع به زار زدن میکنه جولیان میگه چی شده؟ لورا میگه نمیدونم یاهو همه چی برام سنگین شد احساس میکنم شدیداً خستم جولیان میگه بریم تو اتاق دراز بکشیم جولیان به لورا کمک میکنه تا بیرون بره لورا میگه جولیان ما رو از هم جدا میکنن این وحشتناکه جولیان تسکینش میده و بعد دستش رو میگیره و بیرون میره دکتر وارد میشه و به قیب آموز میگه میخواستم ببینم اتون. قیب آموز میگه از اون پایین خبرایی برام آوردین دکتر کنارش میشینه و به نظر معیوس میرسه. قیب آموز با مهربانی بهش لبخند میزنه. دکتر میگه دارم پامو از حدود اختیاراتم فراتر میذارم. طبق مقررات حق ندارم اطلاعی بهتون بدم. اما الان شش ماه میشه که اینجا این و به شما علاق من شدم. قیب آموز خندش میگیره و میگه از این حرفا بوی بدی داره به مشامن میرسه ها. دکتر ناگه هم میگه بازتون هیچ پیش قابل ملاحظه ای نکرده. پزشکای متخصص خیال دارن دستگاهاتون رو قطع کنه. قیباموز از این خبر جا میخوره. دکتر میگه متاسفم خبر وحشتناکی. قیباموز میگه دستگاه ها رو بکشن بیرون و قطع کنن. انگار آدم سشوار مخشکانیه. نمیدونستم تا این هست سقوط کردم. که زندگیم بسته به سیمیه که ممکنه پای پرستار بهش گیر کنه. منتظر چی دکتر میگه اجازه. قیباموز میگه دیگه شورشو در آوردن کی قراره بهشون اجازه بده؟ دکتر میگه برادر زادتون تنها قوم قمونخیشتونه. قیباموز میگه خدای من این بچه لوس که همیشه آب دماغش سرازیر بود امیدوارم همه اون آب نبات توت فرنگیایی که براش خریدم یادش نرفته باشه. همینطورم روزای عید کریسمسی رو که با هم گذروندیم. دکتر میگه پیداش نمیکنن تا حالا که موفق نشدن باهاش تماس بگیرن قیباموز با لبخند میگه برادرزاده عزیزم داره در امریکا تحصیل میکنه امریکا هم که خیلی وزرگ درندشته دکتر میگه بیخود دلتون رو خوش نکنین بالاخره که پیداش میکنن شما هم از این اقما بیرون نمیان قیباموز میگه آره متوجه دکتر به شونهی قيباموز میزنه و لبخند میزنه جولیان مثل سائقه سر میرسه و به طرف دکتر حجوم میبره. جولیان میگه یک دقیقه دکتر، یه خواهشی ازتون دارم. اما باید مطمئن شم که تقاضام رو قبول میکنید. دکتر میگه پس از همین الان جوابتون نهه. جولیان میگه یه ثانیه به هم فرصت بدین. دکتر میسته و گوش میکنه. جولیان ادامه میده که میخوام که هرچی پیش بیاد ترتیب بدین که من و لورا، تو سنسور با هم به یه جا بریم متوجه میشین یا با هم به زمین برگردیم یا اینکه با هم بریم اون بالا قیباموز میگه دیگه نمیترسین جولیان میگه الان فقط از یه چیز میترسم اونم اینه که لورا رو از دست بدم قیباموز میگه فکر میکنی اون بالا خبریه جولیان میگه قبلا فکر میکردم این دنیایی که حالمو به هم میزنه بر حسب تصادف و اتفاق به وجود اومده آره فکر میکردم از ترکیب و مخلوط ملکول این آش شلم شوربا درست شده اما الان وقتی به لورا نگاه میکنم به خودم میگم آخه مگه میشه که لورا از برخورد تصادفی ملکول درست شده باشه همون ضربه هایی که سنگریزه ها و دود ها رو به وجود میارن مگه میشه که همونها ها زیبایی لورا لبخند لورا و ذات قشنگ لورا باشن دکتر میگه شاید جولیان میگه نه. دیگه حالا دلیلی برای خوشبینی دارم که اسمش است. دکتر میگه خب اینکه زندگی رو دوست دارین چه بهتر اما از مرک نمیترسین؟ جولیان در حالی که میلرزه میگه کمتر. دکتر میگه همون خدایی که به وجودتون میاره میتونه از بینتون هم ببره. جولیان مرددت میگه که وقتی که ابدی نیستین فایدش چیه که برای یه بار وجود داشته باشید. دکتر میگه فعلا همین که چیزی وجود داشته قنیمته چرا میخواین که همه چی دوام داشته باشه؟ جولیان میگه اگر به ما شعور دادن برای این نیست که از بین ببریمش وگرنه هدیه بیهوده و مزر بود ماده و جوهره ای که به حال خودش گریه کنه که دیگه ماده نیست آگاهی گوشت تنی که ازش خون میریزه نیست آگاهی فراتر از گوشت و پوست میره دکتر میگه آگاهی مثل یه تیغ دولبست. آگاهی آدم امیدوار میکنه یا ناامید آگاهی معنیش آگاه بودن به تراژدی و مسیبتنامه بشره یا آگاهی به وجود یه راز جولیان میگه حاضرم شرط ببندم همین که میدونیم میمیریم خودش یه نشان است بااموز میگه نشونه چی؟ جولیان میگه نشونه اینکه مرگ انتها و پایان نیست دکتر میگه با این حال همه چی تاریک و نامعلومه جولیان میگه اونجایی که تا حالا تاریکی می میخوام از این به بعد امید و روشنایی ببینم. دکتر میگه همه این چیزا رو مدیون لورای، می میگه معجزه همینه، چیزی که با آدم ایمان میده. درا هم موجزه منه. خواهش می کنم بذاریم ما با هم بریم. دکتر میگه خیلی دلم می, خواست می گفتم باشه ولی هیچ قدرت و اختیاری ندارم. سرنوشت لورا بستگی به اوضاع و شرایط داره. من شرایط رو رقم میگه می حق با شماست. بعد جولیان به طرف راهروی ت میره و میگه میرم لورا رو ببینم چقدر احمقم که این همه وقت رو بدون اون هدر دادم ممنونم ممنونم جولیان بیرون میره قیباموز میگه شغل دشواری دارید دکتر ساکته قیباموز میگه سختیش اینه که آدم به سایرین برسه اعتمادشون رو جلب کنه بعد یهو بهشون اعتراف کنه که هیچ اختیاری نداره ازتون خوشم میاد اوائل فکر میکردم آدم خشنی هستی از این حتی حتی جوابمو نمیدادین نزدتون دلخور بودم. دکتر میگه دنبال جواب نبودین شما. دنبال این بودین که وحم و خواب و خیال بخوردتون بدن. قیب آموز میگه بله درسته. باور سلاح آدمهای ضعیف و نگرانه. اون موقع حتی باورهای منفی هم برام باعرزشتر از شک بودن. لازم داشم یکی به هم بگه که این و این نیست. دکتر میگه بعدش یاد گرفتیم به شیم. قیباموز میگه وای چقدر خوبه این که آدم با فرزیاد مثل حباب های کف صابون بازی کنه و حتی وقتی هم که هیچ چی سر در نمیاری باز برای خودت خیال بافی کنی دکتر آماده رفتن میشه قیباموز کاغذی رو از کتش در میاره و آمرانه به طرف دکتر دراز میکنه قیباموز میگه بفرمایید اینم شماره تلفن برادر زادم بهش زنگ بزنی تا لوله ها رو ازم بکشد است. به هر حال اون چه باید پیش بیاد پیش میاد و به من مربوط نیست که این خبر رو برسونم. قیباموز میگه دکتر بهتون التماس میکنم. باید زود عمل کرد. دورا هم مثل من تو بیمارستان سن بستریه. کار ساده ایه. کافیه کی سی ام و بکشن از تو سینم یه تیکه گوشت بیرون بیارم و برسوننش به طبقه پایینی. دکتر میگه انجام این تقاضا ممنوعه. قیباموز میگه خسته نشدین؟ هر روز این همه آدم از جلوتون رد میشن. به موفقیت ها و شکستشون پیمین برن و حتی گاهی آدم های بهتری میشن. خب بعدش که چی؟ همش بیهوده. از اینکه سرنوشت همیشه یه بازی قرعه کشی باشه خسته نشدین؟ چرا خدا انقدر ساکته؟ نکنه اون بالا همه رفتن تو اقما؟ چرا جواب نمیدن؟ ضربه مغزی شدن؟ خب بیدارشون کنین یه کاری بکنین. قرن‌هاست که همه وقت خواب با اونا حرف میزنن. بیدارشون کنین. یا اگه براشون مهم نیست و تا ابد میخوان چرت بزنن، عوضشون کنین. شما جاشونو بگیرین و نقشه تقدیر رو بازی کنین. دکتر میگه انقدر ساده نباشین. شما میخواین نیکی پاداش بگیره و بدی به سزاش برسه. شما میخواین هر جور ادالتی که شبیه ادالت باشه، حتی ادالت نادرست وجود داشته باشه. مثلا خدایان دمدمی مزاجی باشن یا متحد باشن یا حتی بی اندازه مستبد وجود داشته باشن. این معنیش اینه که یه اراده نظمی فکری چیزی شبیه انسانون بالا وجود داشته باشه. در حالی که به جای این تابوده زندگی همین بوده که هست کر، کور، بی تفاوت میگه پس اراده چی؟ اراده شما چی میشه؟ دکتر میگه شما در جایی از دنیا قرار گرفتین که ارادهای دیده نمیشه قیب میگه آزادی به شرطی وجود داره که انسان بهش اعتقاد داشته باشه و ثابتش کنه خیلی خب قبول نظم ماده از قوانین ترکیب و فروپاشی خودش تبعیت میکنه نمی‌خواید فقط یه بار آمدن یه ذره متفاوت وارد این دستگاه بکنین؟ یه ذره، یه ذره کوچولی و ناچیز، یه ذره انسانی واردش کنین و دست تصادف و کوتاه کنین. بعدش هم دکتر تصورش رو بکنین چه لذتی داره آدم از قوانین سرپیچی کنه. دکتر میگه دست خودتون نیست. باید همیشه وسط حرف‌های خیرتمندانه یه دریوری پرت کنید. بعد کاغذ رو توی دست دکتر میذاره آقای قیب آموز و اونو میبوسه. انگار که بوسش مهری باشه روی کاغذ. دکتر منقلب و آشفت است. میخواد چیزی بگه اما نمیتونه. به سرعت از در بیرون میره. لورا و جولیان وارد سالم میشن. غیباموز خودشو خودش رو پشت روزنامه بزرگش پنهان میکنه. لورا، ملتحب میگه باور کن همینطوره میدونم که وقتی به زمین برگردی همه چی اینجا رو فراموش میکنی از اقامت اول هیچ چی یادم نمونده تازه وقتی در آسانسور باز شد یادم افتاد که قبلا اینجا بودم جولیان فکرشو بکن که ممکنه من و تو رو زمین همدیگر رو نشناسیم جولیان میگه از این بابت نگرانی ندارم من تو رو میشناسم لورا میگه نه یه روز یه جایی با هم برخورد می‌کنیم تو یه راهرو، کوچه و نگاهت از بالای سر من رد میشه و میره تو حتی متوجه منم نمیشی. جولیان میگه محاله، محاله. همه جا دنبالت میگردم. لورا میگه منم. با این حال بهتر تمرین کنی. من یه چیزی چیزیو میدونم که حتی دکترم نمیدونه. دفعه پیش که اینجا بودم، شروع کردم رقص تانگو رو با خوان مردی که اینجا بود یاد بگیرم. جولیان از حسادت لورا رو پس میزنه و میگه چی؟ لورا با خنده میگه 80 سالش بیشتر بود. اینقدر خوشحال بود که روماتیسم دست از سرش برداشته که میخواست برقصه منم باهاش رقصیدم تا اون وقت هیچ وقت نرقصیده بودم جولیان میگه خب دورا یهو جدی میشه میگه ببین وقتی برگشتم پایین این مهمانسرا و خوانو درسای تانگو رو کاملا فراموش کردم اما پاهام قدم‌های رقص رو فراموش نکرده بود ناخداگا اداشو آوردم. ما هم باید کاری کنیم که اون پایین هم دیگر رو بیاریم همین لحظه دکتر و دوتا دستیارش وارد میشن. دکتر میگه جولیان، باید با شما تو اتاقتون صحبت کنم. و بعد به طرف قیباموز میره و میگه این کاغذ اتفاقی از جیب کتتون افتاد، یه پرستار برش داشت و تحویل پزشک داد. قیباموز میگه اتفاقی. دکتر میگه آره، اتفاقی؟ قیباموز میگه اتفاق کارش درسته. دکتر میگه آره، بعضی وقتا. حالا هم برادرزاده‌تون رو صدا میکنن. اون از حال و روزتون جا میخوره. معذبه نمیدونه چی کار کنه میگه از نظر اون اینجور تجربیهای پزشکی پافشاری بیهوده است. همین هم میگه که شما رو خیلی دوست داشت. قیباموز میگه که خیلی دوستم داشت و بعد از یادآوری گذشته برای خودش یه لحظه از پا در میاد. دستش رو به مبل میگیره تا نیفته جولیان همراه دکتر اتاق رو ترک میکنه. لورا از پریدگی رنگ قیباموز متحیره و میپرسه که حالتون خوب نیست؟ قیباموز میگه چرا؟ چرا؟ قیباموز میشینه و لورا هم کنارش قیباموز میگه میدونی اون وقتا یه دختر داشتم یکم شبیه شما بود همین چشمای شیتون، همین نیمرخ پررو رو همین حالت با که نمیذاره زندگی مروبش کنه همین زلفای پر پشت و عبری شمین که انگار سلامتی درش جاریه وقتی نگاهش میکردم انقدر به نظرم خوشگل میومد که با خودم می گفتم امکان نداره نمیشه که بچه ای من باشه قدرت سهرامیزی هم داشت مثلا وقتی وارد جایی می شد تمام ابتزال هستی از بین میرفت اون زمان من نماینده بازرگانی بودم مسافرت های طولانی میرفتم رفتم شبا توی هتل های میخوابیدم مشتریای می خوابیدم مشتری که در و رون باز نمی اما در اعماق این ظلمات فرشته نگهبانم اونجا بود زندگیم، دخترم. خلاصه کاروبارم گرفت. یه روز که تو ناف و آمریکا توی موتل بودم بهم به زنگ زد. صداش خیس بود. گفت بابا حالم خوب نیست. فهمیدم که تو بیمارستان به سریش کردن. مجبور بودم اون طرف اقیانوس بمونم. داشتم برای شرکتم بزرگترین قرارداد بازرگانی ممکنو میبستم. این موفقیت دست و پام رو بسته بود و نمیشد برگردم. تازه کلی هم ذوق زده بودم. پای تلفون احساس میکردم صداش داره ضعیف و ضعیفتر میشه اما با خودم میگفتم که جوون و قویه و به محض اینکه پدرش برگرده سلامتی و روحیهش رو باز مییابه اما تو 20 سالگی از یه مریضی مرد یه ویروس یه ویروس مثل یه دستگاه جنگی مجهز میمونه که آدم رو خرد و خمیر میکنه و قوا رو تحلیل میبره گوشت بدن رو می‌جوه و یه روز ازتون یه جسد کوچیک روی تخت باقی می‌زاره. خیلی دیر رسیدم. درست بعد از رفتنش. قیباموز بعد از گفتن این حرفها ساکت میشه. لورا سرش رو روی شونه قیباموز میذاره. قیباموز میگه بعدش کارم رو ول کردم، احزار روح میکردم، با گوی بلورین فال میگرفتم. دلم میخواست با هم حرف بزنه اما چیزی جز سکوت نصیبم نمیشد. خاطری که از مرگ یه فرزند داری انگار توی معبد نگه داشته میشه که درد و رنج ازش محافظت میکنه این خاطره از جنس بقیه نیست یه پارچه است که تا بر نمی داره غیر قابل لمس برایش هیچ کاری نتونستم بکنم لورا میگه نمیتونستین این کاری کنی غیبو میگه من حتی پیششم هم نبودم لورا میگه نمیتونستی قیباموز میگه احساس گناه میکردم. میخواستم یه جوری جبران کنم. لورا میگه جبران کنی. آدم که جبران نمیکنه. قیباموز سرشو بلند میکنه و لبخند میزنه. بعد میگه چرا چرا جبران کردم. یه روزی با یه نفر دیگه. لورا میگه واقعا. قیباموز میگه آره. لورا میگه لابد اون روز براتون تو محشر بوده. قیباموز از خوشحالی تو چشماش عشق حلقه زده و میگه محشر بود. لورا بهش نزدیک میشه و خیلی ساده و با ملایمت حرف میزنه. میگه خیلی دوستتون دارم. اینجا همه یکم هم دستتون میدازم ولی من دوستتون دارم. قیب آموز لبخند به لب و در حال گریه میگه متشکرم. منظورش از جبران همون کاریه که برای لورا انجام داد و قرار شد قلبش رو به لورا اهدا کنه. تو این لحظه دکتر و دستگارهاش وارد میشن. دکتر خیال داره طبق معمول زود از اتاق خارج بشه اما وقتی لورا رو در آغوش قیب میبینه لحظه ای میکنه بعد آهسته میگه لورا مجبورم ازتون بخوام من و قیب آموز رو تنها بذاریم لورا میگه چشم دکتر آرام و سبک قیب آموز رو ترک میکنه و میگه تا بعد آموز دستش رو روی قلبش میذاره و میگه تا بعد لورا بیرون میره دکتر به طرف تابلوی اعلانات میره نور قرمز رنگی روش چشمک میزنه صدای زنگ بلند میشه به طرف قیباموز بر می دکتر میگه ببخشیدن ما خیلی دیر کرد قیباموز میگه این کار عملیه لورا زنده میمونه دکتر میگه بفرمایید تو آسانسور دکتر تا دم آسانسور همراه قیباموز میره و در آسانسور باز میشه قیباموز میگه دکتر میدونم حق ندارین چیزی بهم به بگین فقط به هم بگین لورا جون سالم به در میبره یا نه قیباموز توی اتاقه که آسانسوره دکتر میگه گروه پزشکی تصمیم گرفته که قلب شما رو به لورا پیوند بزن قیباموز میگه ممنونم دکتر منقلب میگه نه نه چیزی نگید هیچ وقت هیچ کس ازم تشکر نکرده به خصوص وقتی که میخوام برم بالا قیباموز پیش از این که در بسته بشه میگه متشکرم. در آسانسور بسته شده. علامت روبه بالا روشن میشه صدای مهیب عزیمت میاد دکتر نگران به طرف دستیارها برمیگرده اونا متوجه شدن که دکتر از مقررات سرپیچی کرده دکتر میگه میدونم خلاف مقرراته دوباره زنگ به صدا در میاد دکتر میگه بدوین زود باشین لورا رو بیارین دستیارها این کارو انجام میدن چند لحظه بعد دستیارها با جولیان و لورا که همدیگر رو بغل کردن برمیگردن دکتر میگه لورا جان نوبت شماست لورا ناگهان وحشت زده خودشو تو آقوش جولیان میفشاره و میگه نه نه نه نه هنوز. دکتر با نگرانی به تابلو نگاه میکنه و میگه خواهش میکنم لورا. حتی یه لحظه فرصت نداریم. لورا میگه نه نه هنوز. قیباموز کجاست؟ میخواستم باش روبوسی کنم. جولین به نظر وحشت زده نمیرسه. دستیارها اون دو نفر رو از هم جدا میکنن و لورا رو به داخل آسانسور میفرستن جولیان میگه عشق من به من اعتماد داشته باش لورا تو اتاق آسانسور تنهاست و میلرزه در بسته میشه لورا در حالی که صداش در حال خفه شدنه جولیان رو صدا میزنه دستیارها و دکتر با دلخوری به علامت خیره شدن ناگهان روشن میشه و پایین رو نشون میده و حرکت میکنه جولیان از خوشحالی فریاد میکشه آره آره آره و بعد از خوشحالی دکتر و دستیارها رو میبوسه و اونا هم مخالفتی نمی کنن. جولیان میگه دکتر ازتون متشکرم که حرفای با موضوع بهم به گفتید وگرنه رو نداشتم که لورا رو تا دم آسانسور بدرقه کنم. دکتر معذب به دستیارهاش نگاه میکنه و به جولیان میگه ساکچین بعد به دیوار تکی میده تا نفسش سر جا بیاد. بعد میگه هیچی چی طبق مقررات انجام نشد. از فردا دیگه ادا فرق میکنه. دکتر به دو فرشته سفید پوشش نگاه میکنه که به طور مرموزی دارن لبخند میزنن. دکتر منظور دستیارها رو میفهمه، نفس راحتی میکشه و خودشم لبخند میزنه. دکتر میگه با شماست. فردام همین بسات. به طرف تابلو میره و به جولین میگه به زودی نوبت شماست. جولیان آهسته میگه به کدوم طرف؟ دکتر میگه نمیدونم. جولین باز هم آهسته تر میگه دکتر شما میدونین اون بالا چه خبره؟ دکتر سرش رو میده و میگه نه من فقط کارم رو بلدم ازتون استقبال کنم منتظر نگهتون دارم بعدش هم تا دم در آسانسور بدرقه‌تون کنم فقط همین رو میدونم که اگه آسانسور بالا بره سفر بی بازگشته جولیان میگه چرا دکتر صداتون میکنن دکتر میگه من امروز اینجوری به نظرتون رسیدم و میتونه عوض شه به زمانش داره مثلا برای شما من یه زن بودم و به نظر رئیس دل یه مرد بودم جولیان ما تو متحیر میگه من که سر در نمیارم دکتر با لبخند ای میگه منم همینطور برای من هم مثل شما مرک واقعی نیست یه رازه جولیان میگه نه حتی بیشتر از اون چیزی که بروز میدیم میدونی اگه زندگی یه محبته کی به ما مای محبت رو ارزونی داشته دکتر میگه نظر خودتون چیه جولیان آهسته میگه خدا یا خود هستی دکتر میگه حتی جواب این سوال هم علامت سوال داره خدا خود هستی چه فرقی میکنه در هر صورت معنیش اینه که بدهکارین جولیان میگه بدهکار دکتر میگه بهتون یه هدیهای دادن بعد بپذیرین بعد هم موازه بش باشین و سرانجام این هدیه رو به کس دیگهای منتقل کنین به نوبه خودتون زندگی ببخشین با بچه عمل اثر عشق یا هر چیز دیگه جولیان میگه مسلما و اینطوری آخر عمرمون درست وقتی که هدیه داره به آخر میرسه شاید بالاخره شایستگی و استحقاقش رو داشته باشه. دکتر میگه شاید. جولیان میگه به این ترتیب شما نمیدونین مارک چیه. دکتر میگه بدترین اتفاقی که میتونه برای این سوال بیفته اینه که پاسخی بهش داده بشه. صدای زنگ بلند میشه. دکتر میگه نوبت شماست. در آسانسور باز میشه و جولیان فرمان بردار وارد میشه جولیان میگه عجیبه حتی اگه الان قراره بمیرم آسوده خواهم بود دکتر میگه اعتماد جولیان میگه با اینکه بیشتر از قبل نمیدونم اما چیزی که نمیدونم کمتر به وحشتم میندازه دکتر میگه اعتماد شعله لرزونیه که چیزی رو روشن نمیکنه اما گرما بهش میبخشه جولیان وارد آسانسور میشه و اونجا نگرانی بهش چیره میشه جولیان میگه دکتر اگه من و لورا روی زمین با هم برخورد کنیم فکر میکنیم که همدیگه رو بهجا میاریم. دکتر میگه به نظرم به محض این که از آسانسور بریم بیرون همه چی رو فراموش میکنیم. اما روی زمین یه حافظه ناخودآگاهی از آنچه در خارج از زمین اتفاق میفته باقی میمونه. حافظه ای عمیق که تو لایههای روح جای گرفته و با اولین نگاهی که دو آدم به هم میکنن فعال میشه و باعث میشه همدیگه رو بشناسن. اسمش هم عشق رعداسا یا عشق در یک نگاهه در آسانسور به روی جولیان بسته میشه دکتر و دو فرشته بالای آسانسور رو نگاه میکنن تا علامت رو ببینن اما نور بیشتر میشه و سفیدی درخشانتر تا جایی که خیره کننده و کور کننده میشه و پیش از این که بدونیم جولیان میمیره یا به زمین برمیگرده تموم مهمون سرا در نور و روشنایی و خب امیدوارم از شنیدن این نمایشنامه لذت برده باشید. اگر نظری داشتید درباره این اپیزود پادکست الف حتما برامون در کامنت های توییتر و اینستاگرام بنویسید. اگر پادکست رو جایی به از اپلیکیشن های پادکست میشنوید لطفاً یک اپ پادکست چه روی اندروید چه روی iOS نصب کنید و از اونجا پادکست ما رو دنبال کنید. برای حمایت مالی هم لینک های باش و پیپینگ توی توضیحات اپیزود قرار گرفتن. هرچند هیچ اجبار و لزومی به حمایت مالی وجود نداره و بهترین حمایت شما میتونه معرفی پادکست به دوستانتون باشه در آخر از خانم شهلا هائری و نشر قطره برای ترجمه و منتشر کردن این نمایشنامه و از مریم رحیمی برای خلاصه کردن متن نمایشنامه این قسمت و همینطور از شما برای شنیدن این اپیزود تا اینجا باید تشکر کنم. این نقش ماند از قلمت یادگار عمر.